بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سبومين الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملأ ما خلق وسبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض وسبحان الله عدد ما أحفظ كتابه وسبحان الله ملأ ما أحفظ كتابه وسبحان الله عدد كل شيء سبحان الله وسبحان الله ملأ كل شيء الله أكبر عدد ما خلق الله والله أكبر ملأ ما خلق والله أكبر عدد ما في السماوات وما في الأرض والله أكبر عدد ما أحس كتابه والله أكبر من ما حصة كتابه والله أكبر عدد كل شيء والله أكبر ملأ كل شيء بس الله صلى الله عليه وسلم روزي أبو مبرم مي يبين ميجي درد دهنة تكوميدي ميجي بل تكوميدا ذكر الله رمىها ميجي آيات زكري بهت ياد ندم كل أسكار بهترن در شابو ذكري بهت ياد ندم كاس همي أسكار بهتره يعني زكري بيت همي ارزشش بالاتره گفتن آری فرمود این ذکر رو بگو که الان گفته. ولی گفت به فرزندان و نوادگان نسل که بعد از هم یادش بده چه معنایی داره این ذکر رو بید الحمدلله عدد ما خلق به تعداد آن چیزی که الله آفریده چقدر آفریده چقدر جان داره چقدر ما انسان ها جنیان انواع حشره و پرنده و ماهی چقدر دریا ماهی هست الحمدلله عدد ما خلق حابل شمارش نیستن خلق الله. حمد ما حمدی الله را میگیم به خاطر فعل و ذاتش یعنی مق... مقام بالای خداوند و افعالش ما مو... اس داریم وصف داریم و فعل داریم که توسل به این سه نسبت به باسم... اسم ها و افعال و صفات الهی در قرآن و سنت اومده فعل خداوند اللهم صل علی محمد و علی و علی كما صليت علی ابراهیم علیه همونطور که درود بر ابراهیم فرزادی و آل ابراهیم بر محمد و آل ابراهیم هم درود این توسل به فعل الله همونطور که درود برب إبراهيم فرسى بق فرسادي برب محمد وعلى محمدن بفرس فعل جاي تبصل ببسفة عود بكلمات الله التامات كانوا هم يبرون بكلماته القرآن ببسفة جاي تبصل باسم الله الرحمن رحمني يا الرحمن رحمني ترحماني من رب بخش رحمتة تروح مش ملاحلم ترحماني أنت بسول بجيه باسم الله الله جل شأنه الله جل شأنه مستحق حمده این حمد مطلق الحمد مطلق حمد یعنی مطلق ستایش و سپاس و شکر همه اینها معانی مختلف نمیتونین در لغت فارسی کلمه معادلی برای حمد پیدا بکنیم. شاید نزدیکترین کلمه به حمد ستایش باشه شاید نمیشه نزدیکترین ولی دارم میگم بالاتر از دروده یعنی مجرد ثنا یعنی درود نیست که مثلا ما بگیم تعریف و تمجید باشه نه تحمید یه طرفه تمجید یه طرفه یه چیزی رو بزرگ بپندارید تمجیده به خاطر اون وصف نیکی که داره تمجید معمولا یه چیزی رو به بزرگی یاد بکنیم به خاطر اوصافشه ولی حمد به خاطر ذات و فعل حمد الله یعنی به خوبی یاد کردن به خاطر افعال نیکش و ذات میگشه هیچ نقصی در الله نیست الله خودش بزرگه و افعالش هم بزرگه اینجا هست که وقتی که ما میگیم حمد بالاتر از سنا و درود یعنی اینکه تو چه در مقابل نعمت و عدم نعمت مطلقاً الله را بیاد داشته باشی و او را تعظیم بکنیم شکر و سپاس و درود در مقابل نعمت میاد تو یه خوبی از الله دیدی غذایی به تو فراهم کرد روزید کرد میگه الحمدلله ولیکن حمد نه حمد مطلقه در مقابل کل صفات و ذات جلاله الله جل شانه یعنی من حمد الله را میگم به خاطر عظمتش به خاطر اون رحمتی که رحمت و وسعت که همه رحمتت همجرا فرا گرفته به خاطر اون صفات کمال و جلالی که داره حمد سر نمازم میگم الحمدلله توفیقم داد نعمته ولیکن حمد را هم میگم خارج از بحث شکرش اسباب تعظیم به الله, با محبتی الله. و محبتی که در دلم نسبت به الله نه از پس اون نعمتی که من دیدم نه خاطر اون نعمتی که من لمسش میکنم نه خاطر محبتی که در قلب من نسبت به اله است هم میگم چون الله را دوست دارم میگم الحمد لله خیلی مهم خصوصا الله شريف فاتح الدقه كما تقسيم يكون ان شاء الله در حديث اومده ميجي الله ده حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولا عبدي ما سال ابري بنده او شيء خاصه اياك نعبد واياك نسال اي مال بنده است ميجي بنده را هرچه بخواد بهش ميدن ولا عبدي ما سأل اهدنا الصلاه المستقيم صلاة الذين نعمت عليهم تو اخرش ولا عبدي ما سأل اون چيزي بخواد بهش ميدن چه بهش ميده خداوند اون قسمتي که مال مال خداست انسان بده در حدیث میگه، ولا عبدي مسال. فاذا قال العبد الحمد لله رباعي قال الله حمداني عبدي. و اذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. و اذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدي. مرا به عزماتی کرد. بر من درود فرساد. مرا حمد و ستایش و درود گفت این ستا من از پایین شروع کردم تا. تاب حمد. این مال خدا هیچ بنده ای هیچ مخلوقی در این شریک نیست احدیت الله ربوب در این امور در قلب خود یعنی هیچ کسی نباید ذره‌ای از اون صفات و افعالی که الله داره در اون چیز نباید برای الله شریک قائل بشیم اگر یک ذره شرک و مات. الله كل اعمال مر بطل می سازه مثلا علم غیب اگر کسی را شریک چرا گفته که رسالت میگه من اتکاهنا او عرفه فقط کفر به موزه محمد چون دلیل تو علم اون شخص را نسبت به آینده اون کاهن را نسبت به من چیزی که از آینده هست ظریف تصدیقش میکنی علم غیب را جزء الله هیچ کس نمی‌دونه این سبب میشه که چی؟ دچار شرک بشی از امت مح... از امت محمد صلی الله علیه و خارج می‌شی در تمامی چیزها افعال در قدرتش در رحمتش سبحان الله مثلا نقصی که کسانی که میرن نزد مردگان مثلا از مردگان میتربن نقصی که در توحید اونها ایجاد میشه در صفاتش قبل از نقص در, در ایمانشون به صفات الهی قبل از جانب توحید الوهیت شما نگاه بکنید شنیدن مطلق از آن الله دیدن مطلق از آن الله درسته؟ رحمت مطلق از آن الله رعفودن و لتیفودن مطلق از آن از آن کیه؟ الله اون کسی که میره در مرده را میزنه اون پیکری که در زیر خرمن خاک خوابیده کی؟ رحم و لطف و محبتش و مهرش نسبت به ما بیشتره مادرمون نمیگم اون مرده ای که زیر خاک خوابیده مادرمون یا خداوند یکتا و یگانه قابل قیاس نیست چطور الله الرحمن الرحیم رحمت و وسعت کل چی اینقدر الله رحمان یعنی مهربانه و مهررزه تو داری میگه در ترجمه الرحمن الرحیم نام الله که مهررزه اگر الله مهربان مطلقه دلسوز مطلقه نسبت به خلق خودش چطور در اون کسی میزنی که قابل قیاس نیست دلسوزیش با اون با خالق یکتا یعنی دل اون دلش بشترس خدا به تو میسوزه که داری در اونو میزنی که تو بدن پیش خداون شفاعت کن یعنی خداون دلسوز نیست به تو مگر اون از حال دل تو و آینده تو با خبره وقتی که در غیر خدا را میزنی میگه اون مرده میدونه که این چیزی که میخوای به آینده به دردت میخوره یا نمیخوره؟ دو طوره نقص در توحید میشی در نقص در ایمان به علم الله میشی یا نه. اگر ایمان داری که علم مطلق از اونچه که در آینده هست مصلحتش رو الله میدونه پس چرا در غیر خدا رو میدونی؟ در اون کسی که نمیدونه مصلحتت هست یا نیست. وقتی که درش رو میزن یعنی اون میدونه. یعنی اون دل سوسره نسبت به خدا به تو. این هست که چی؟ نقص در توحید ایجاد, ایجاد میکنه نقص اول در صفات و صفات الهی که منجر میشه به شرک در توحید الوهیت و در عبادت الحمدلله عدد ما خلق و الحمدلله ملء ما خلق به وسعت آن چیزی که الله افریده وسعت آسمان ها و زمین گفتیم که چه؟ خیال منم هم نمیکشه وقتی که میگن مثلا کهکشان ها هر ستاره یک نوری که میبینی میگن چندین میلیون بار از منظومه شمسی بزرگتره همین زمینمون بزرگ میبینی وقتی که با هپمون میریم بالا ماشینا رو هی بیست تا بیست تا میبینی که از چشمم غایب میشه زمین اینقدر گنده است خورشید در مقابلش خدا میدونه چقدر بزرگتره حالا این زمین و این خورشید و عطارد و مریخ و دیگه سیاره ها که از زمین میلیون ها بار بزرگترن یه طرف آسمون ها یه طرف کهکشان ها هم یه طرف کهکشان راه شیری و میلیارد ها کهکشانی که ملیارد ها بار از این زمین گنده تره مل اما به بمستعد تمامی این مخلوقات و الحمدلله عدد ما في السماوات به بتعداد آنچه که در آسمان ها و زمین تنها در این زمین اول به آنچه در آخری ده و تعداد آنچه که میبین میان آسمان ها و زمین و الحمدلله عدد ما احصا کتابه بتعداده اون چیزی که در کتابش لوح محفوظ اومده والحمد لله ملأ ما احصى كتب وسعته اون چیزی که در کتابش اومده والحمد لله عدد كل شيء بتعداده همه چیزها والحمد لله ملأ كل شيء ب पूरी وسعته تمام چیزها تسبيح الله هم همین طور تسبيح الله هم همین طور و تکبیر گفتنم همین طور این اول تحمید که در این حدیث اومده و بعد تسبيح و بعد تکبیر این ستا خیلی درجه و مقام بالایی داره نیازه که روی تک تک اینها مقام و منزلتشون بیستیم در این حدیث هم تحمید و هم تسبیح و هم تکبیر داشتیم حمد و تسبیح سبحان الله گفتن و هم تکبیر الله اکبر گفتن اول تسبیح اول پاک و منزه داشتن الله از هر عیب و نقصی تسبیح برای ما مخلوقات فقط نیست برای ما انسان ها فقط نیست و جنیان که بر سر زبان بگیم سبحان الله الله تمامی مخلوقاتش براش تسبیح میگن او را پاک و منزه میشمرند نه اینکه ما بگیم بدون صدا و بدون اینکه بگیم نه معناش این که مثلا نمیدونم بعضیا میگن معنای غیر حقیقی داره نه حقیقت سنگ و حقيقة إن ميبه و حقيقة إن مخلوقات كي وجود دارن تسبیح الله ميگن ولكن چي؟ لا تفقهون تسبیحهم ما فيقف فهم الدار كي تسبیح انهارا نداریم إن مسألة خیلی مهمة خیلی از آيات در قرآن در لعات بر إن داره كي همي مخلوقات تسبیحات تسبیح الله رميگن تسبح له السماوات السبع ومن فيهن وإن من شيء وإن من شيء چيزي نيس إلا يسبح بحمده تسبیح میگه و حمد و ستایشش هم گفتیم تسبیح به تنهایی کفایت نمی کنه چون تنزیه الله یعنی پاکسازی الله از صفات عیب دلالت بر اثبات کمال نمیده برای الله یعنی صفات کمال رو براش ثابت بکنی صفات نقص رو ازش نفی می‌کنیم هیچ عیب و نقصی توش نیست و صفات کمال و جلال رو داره بهترین اوصاف رو داره با خاطر هم اینجا الله جی میگه و ام من شی الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حليم غفورا فهمچی الله میگه ولقد اتینا داوودا من منا فضل یا جبال اوبی معه والطیر یعنی همراه ذکر و تسبیح داود کوها و پرندگان مأمور بودند که تسبیح بگن هر کسی که صدای تسبیح داود میشنید تسبیح می گفت نه تنها پرندگان قیر یعنی پرنده پرندگان یه طرف و کوها هم طرف دیگر تسبیح می گفتن بله جای تعجب نیست در صحیح بخاری داریم غذایی که به رسول الله صلی الله علیه و می وردن صحابی که تسبیح غذا را میشنیدیم. تسمیه سنگ را می‌شنید در راسال الله صلی سنگ را می‌شنید صدای گریه ی تنی نخلی که بوده شده بود در مسجد وقتی که منبر رو را برای راسال الله درست کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سر منبر کیست؟ آن تنی درختی, درختی که بوده شده بود گریه و زادی کرد صحابه بگه سداه گریه شد در مسجد شنیدیم گریه و زادی رو هندوک رسول الله منبر پایین می‌برد اون تنی نخل را باعوش گرفت اینا حدیث صحيح حقیقت داره تسمیه گفته یا نه؟ بله تسبیح گفتن این مخلوقات که الله میگه و ام شیئ الا به بحمده حقیقت داره مجاز نیست غیر حقیقی نیست حقیقیه با زبانی که الله بهشون داده که ما درکش نمیکنیم تسبیح الله را میگن میگن سبحان الله چقدر شأن کلمه سبحان الله بزرگه خیلی بزرگه که تمامی مخلوقات دارن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله خیلی شأن کلمه عظیمه که این الله در قرآن یاد میکنه ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق این همه آیاته یعنی آیاتی که اومده و امام ابن کثیر الله در تفسیر این آیات میگه که این تسبیحات تسبیحات حقیقیه و حتی امام نووی که خودش در باب صفات جهائی تعویل میکنه اینجا میگه و صحیح انه يسبح حقیقه این تسبیحا حقیقی مجازی نیست حقیقت داره تسبیح گفتن سنگ حقیقت داره تسبیح گفتن پرندگان و تمامی مخلوقاتی که الله آفریده ما برکثیر میگه و اما تسبیح الطیر مع داوود فتسبیح الجبال الاصب وصم اعجب من ذلك پرندگان جای تعجب نیست اگر تسبیح بگن ولی کوه ها وقتی که تسبیح میگن کوه هایی که جامدن زبانی در اونها ما مشاهده نمی کنیم تسبیح میگن این میگه خیلی جای شگفتی و تعجبی داره خیلی عظیمه کو کوه ها تعظيم الله ربعا و تسبیحش بكنا. و بعد انجام بيگه في الحديث أن الحصى صبح في كفرسوس السن. تسبیح قفت در كفر در صان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ابن مسعود مك لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. تسبیح غزار مشتی دی وقت كه خرده مشت مش در زمان رسول صلى الله عليه وسلم. تسبيح قفتا أصل تسبیح. يعني بحاكمون الزهد وشتن الله از هر ايبو نقصه. ایراد بر الله نگیری. اگر مشکلی مسیبت اومد از خودت ببینی، غرورتو خورد کنی، نگو من چگاه کردم که شده؟ نه حتما من کوتاهی داشتم در طاعت و عبادتی، الله میخواد من رو بیدار کنه، آقا الله میخواد من رو حشیار کنه، الله میخواد من رو از غفلتم نجات بده، به خودت برکت. مثل ذنون، مثل یونس علیه السلام، اقرار به گناهت بکن، بگو لا اله الا ان سبحانه که انی کنتو من الظالمی، نه کنید؟ هیچ یکی از ما نمیتونیم ادعا بکنیم در ظلم نیفتادیم چه ظلم بر خودمون چه بر دیگران ظلم را دوا داشتیم در زندگی مولا چه به همسرمون فرزندمون دوست و رفیق ظلم حسادت میشه این ظلم نیاز به چی داره به سخفار و توبه و اقرار اقرار به این کوتاهی در مقابل ربوبیت الهی در مقابل عظمت الهی این تسبیحه بالاتر همین یونس علیه السلام نجات یافت و تسبیحش لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك توک منزهی این مقصر کیه خودم سبحانک اینی كنت من الظالمین این پاک منزه شو مردنه الله را از اون مصیبتی که بهش اومد پاک منزه شو مرد عبر را از خودش دید وقتی که در خودت عیب دیدی نقص دیدی روی میاری به اون کسی که کامله قراردادگاه را تو کاملی و من ناقص نقصمو جبران کرد چرا بعد از سجده ما میگه اللهم اجبرنی جبر یعنی چی اجبرنی یعنی چی جبیر به اون گچی میگن که شکستن دسی که شکسته میشه یا پای که شکسته میشه میبندن جبیره هست تا اینکه اون استخون جوش بخوره به هم دیگه جبیره هست. جب میکنه اون شکستگی تو برطرف میکنه اجبر یعنی ای خدا اون نقص من اون عیب من را کامل بساست جبرانش کن برام این احساسه احساس کوتاهی بعد در بنده این احساس کوتاهی میاد وقتی که تسبیح میگی یعنی تو خودت داری الله کوچک چک در خودت عیب میبینی غرورتو زیر پا میذاری و الله را پاک منزه میشوری حالا من اگه بخوام به حق این معنو بپردازم خیلی بحث بیش از این باز میشه ولی خب من اکتفا میکنم به سخن ابن رجب میگه فسبح حمد ربک در تفسیرش میگه ای سبحه بما حمد به نفسه یعنی اون چیزی که الله حمد خودش رو گفته با اون یعنی الله را اون چنان تسبیح بگو اذ ليس کل تسبیح, تسبیح محمود، هر تسبیح محمودی. حالا این چه معنایی در بر میخوام اینجا بشه الصفات. یک بحث اعتقادی اینجا امام بن رجب رحمه الله میکنه میگه هر تنزیحی هر تصمیحی خوب نیست این که مطلقا بیای از الله صفات را نفیش بکنی الله بالا عرش نیست الله نمیشنود الله نمیبیند چرا؟ چون اگر بگیم الله میشنود پس میشه جسم پس باید چش داشته باشه پس باید گوش داشته باشه اگر بگیم الله دست, دار يعني دست داره یعنی دست ما داره در صورتی که الله در قرآن منع من کرده از اینکه ما مثال براش بزنیم فلا تدریب الله امثال و میگه لیسه کمیت لیشه هیچیز مثل الله نیست میگه این دیگه اصراف در تسبیحه این نوع تسبیح وقتی که برای الله قیاس گرفتی کیفیت دادی به صفات الهی سبب میشه که تو در چی بیفتی؟ الحاد تو بشی ملحد نخز قرآن میکنی الله به ابلیس میگه وما منع که انتسجد ما چرا؟ سجده نمیکنی با چیزی که با دست هم آفریدم بعد تو میای دستو معناش عوض میکنی میگی نه دست قدرت از کجا فهمیدی که الله دست نداره تو میگه الله را دیدی یا مثل الله را دیدی چطور قضاوت میکنی کجای قرآن و سنت اومده که الله دست ندارد میگن نه ارسطو گفته خدا نباید جس باشه کی گفته که لازمه جس بودن دست داشتن یا لازمه اینکه کسی دست داشته باشه اینکه جس داشته باشه جبرئیل در حدیث اومده 600 تا بال رسول سلام دیدم که جبرئیل 600 تا بال داره روی دستانش 600 تا بال داشت یا جبرئیلی که به شکل دحیه کلبی اومد دست داشت اومد دستش روی پای رسول سلام گذاشت جبرئیل حدیث جبرئیل در سعیه اومد دستش روی پای رسول سلام گذاشت جسمه؟ نه نوره جبرئیل از چی بود؟ نور این مخلوق خداست خالق رو دگه نمیشه قیاس گرفت با مخلوق. این میگه بدترین نوع تسبیحه که الحاد و زندقه هست و کفره که باید بازش برحذر باشیم وقتی تسبیح محموده وقتی تسبیح خوبه که در مقابلش اثبات کمال باشه یعنی پاک و منزه بشماری الله را از صفات بد و در مقابلش ضد اون کمال را برای الله ثابت بکنی ظالم نیست عادله لاتخود حسنت و لنو نفیه نمیخوابه خسته نمیشه در مقابلش و ما من لغ خس نشدیم در مقابلش حی و قیوم پایداره استواره نمیخوابه درسته زدش میاد نقصه لا تاخده سنه ولا نو نا چورت میزنه نمیخوابه در مقابلش حی و قیوم همیشه بیداره همیشه زنده هست اما حمد الحمدلله در قرآن زیاد امده رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرماین بهترین دعاها بهترین دعا الحمده الحمدلله دعاس الحمد, الحمد دعاس الحمد على الشطور و على صدره خیلی تو بحرش آدم بره و دقت بکنه رو اون آیاتی که اومده آیاتی که در قران میشه 140 تا آیه الله از خودش به عنوان اینکه محموده و حمید یاد میکنه و اینکه مستحق حمد الحمد لله رب العالمین یکترف الحمد لله الذي خلق السماوات و وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي له ما في السماوات الحمدلله فاطر اصموات آفرینش ها الله خودش را مستحق حمد میدونه چون مالک آسبان ها و زمینه چون آفریدگاره چون پروردگاره چون همه را آفریده و تدبیر کرده چطور همسر انسان غذایی درست میکنه به کام ما خوش میشه خوشتب و خوشمزه میشیم دست دهر نکنه خوشمزه بود یا یه چیزی درست میکنه بچه نقاشی نقاشی که چه خط قشنگ بود؟ چقدر نسبت به پروردگارت گفتی پروردگار آفری شد قشنگی دیگه پشت از اون قشنگی نیست چقدر این میوه هایی که الله بهت داد چقدر از این شکل و هایی که دیدی که متنوعه همه یک بینی و یک چشم و یک دهن داریم ولی هیچ کدوم مثل هم نیستیم تبارک الله حسن الخالقی احسن نحسن احسن احسن بهترین آفریدگار و بهترین مسور بهترین تشتویر کش قابل قیاسی چقدر به این شکوفایی و این زیبایی آیا به زیبایی گلها نگاه کردی با اون رنگ‌های متنوع که از خاک تغذیه میشن یک خاکه یک نهال و یک تخمه که رنگ این تخم و اون تخفر میکنه تخم این گل قرمز و دیگری زرد و دیگری سفید و دیگری بنفشه زیبایی در خلق آفرینش الله را باید حمل بگی در مقابل این همه زیبایی که آفریده. الله مستحق حمد مطلق. اینها هماس آن الله. فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فدعوهم مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب. اینها حمد ستایش الله در مقابل افعال استجابت دعا ابراهیم باش فرزند میده. یا در مقابل قدو مخلصین مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین دعاو بکید خالصانه والحمد لله حمد ستایش الله و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حمد و ستایش بگوی اللهی که یکتاست و فرزندی نداره الله شریکی در ملکش نداره تو را قرار نداد که این خدا رو بپرسی اون خدا خدای یکتا بود و یکتا هست کان الله ولم قبل قبله شی الله بود هیچ خلقی نبود الله تاس آفریننده مطلق بخاطر اینکه آفرین مطلق و تنها و تکه باید او را به تنهایی بپرسیم فقط او هر چیزی که در قالب پرستش بیاد بخاطر همین از, از اوصاف الله شد حمید یا ایوها الناس انتم الفقراء الله و هو الغنی الحمید شما فقیرت به درگاه الهی و الله حمیده الله حمیده حمد مطلق داره دیگه همه چیز آنه الله داری الله غنی هست و ما فقیر و ما محتاج صفات حمد در تعبودية ميساز وقت قفتي الحمد لله يعني فرور دقار ومحتاج رحمدت فهمي ديت كجا دعاس فهمي ديت رصاصة كرام يغي الحمد لله بهترين دعاس يعني فرور دقار ومحتاجا بدرقاهت فقيرا بدرقاهت نيرزمن بدرقاهت انتم الفقراء الى الله والله غني حميد وعلموا ان الله غني حميد لله ما في السماوات والأرض ان الله الغني الغ هو الذي ينزل من بعد ما قنط و ينشر رحمته وهو الولي الحميد ده مقابل باران چطور زمین زنده میشه شکوفا میشه الله ربات حمد بگید در مقابل این شکوفایی نه که در مقابل این سبزه هایی که رد میشی همینطوری رد بشی الحمدلله زمین شکوفا شد زنده شد باکی با قدرت الهی مستحق حمد در مقابل یک بوتهش نه نا هزاران نه بوته ای که ما ببینیم چقدر از این بوته ها رو تو میبینی که الله تدبیرش کرده و اون نهالش را اجازه داده که اون زمین در خودش بی برویانه تک تک اینها را تو باید حمدش بگی تک تک اینهایی که در جلوه چشت زیبا شدن تعمل لذت زندگی را در تو ایجاد کردن همین سبزه ها بود تو سبزه را دوست داری این دوستی را که در قلبت گذاشت؟ اون کسی که مستحق حمد مطلق باید حمد بگی و از ته دلم باید حمد, بگی. حمد در الله حمیده در مقابل اسماش در مقابل افعالش و در مقابل اوصافش هر چی درباره حمد گفته بشه کمه هر چقدر ما درباره حمد و ستایش الله این کلمه بگیم حقش رو نمیتونیم ایفا بکنیم روزی حدیث ابوموسی اشعری هست در سنن ترمذی البانی هم تحصدیش میکنه ابوسعیدی چینی از اثر روایت میکنیم میفرمایند اذا ما تولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضت ولد عبدي وقتی که فرزند یکی فوت میشه میگه که الله به فرشتگانش میگه میگه قبض کردید روح فرزند بندم. ام نعم میگن فرشتگان بله فایقولوا قبت الثمره افواده اون جگر رو ازش گرفتی فایقولون نعم و گفتید لطف الله رحم الله مهربانیش با خلق خدا قابل قیاس نیست بنده ای فوت میشه الله جل شانو بفرشتغانش بيگه ميگه جگر قشش رعزش گرفتی ميگن بله فارزاندش رو گرفتی ميگن بله فيقولون نعم فيقولوا ماذا قال عبدي چی گف بندام فيقولون حمدك وستر قف الحمد لله وإنا لله وإنا وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابن العبدي بيتا في الجنة خوني دربهش برای این بندام بسوزید وسموه بيت الحمد خوني حمد نامش بزارید پاداش چی؟ گفتن الحمدلله در مقابل مصیبت این بنده دونست که الله جل شعنه هیچ وقت کاری را بی حکمت انجام نمیده قضای الهی هر چقدر تلخ باشه شر نیست به انسان بلکه خیری در اون هست این بنده دونست و بر زبانش جاری شد الحمدلله شکر و سپاس الله این حمد و این شکر و سپاس را بر زبان جاری ساخت به خاطر اون اعتقادی که در قلب نسبت به الله داره ایمانی که به الله داره ایمانی که به وعده الهی داره ایمانی که به روز آخرت داره و اینکه این, این دنیا جاودان نیست و شک درش نیست که قضای الهی همش نیکی در حدیث دیگر داریم در صحیح مسلم رسول الله صلی اللہ وسلم نفسی لا الله علیه و سلم فهمان و نفس لا یقضی الله قضاء إلا كان خيرا له يعني الله شيء براي برأي إنسان تقدير نم يكون مجرد خيريات إنسان درشاس مجرد يعني محالك خيريات تجنب وشة وليس ذلك إلا للمؤمن فإن تقدير نيك نيس مجرد برأي مؤمن براي مؤمن نيك فخذ برأي أنك أنت كمؤمن حقيقي هاس إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له مصیبت به شوراسه صبر میکنه و شکر الله را میکنه براش خيرة و این اصابته الذراء صبر این اصابته سر شکر در مقابل خوشی شکر میکنه و این اصابته الذراء صبر در مصیبت به شوراسه صبر میکنه فکان خیر الله در مقابل مصیبت صبرش هم براش خیریت درش است مقام مقام تسلیمه در مقابل الله جل شانو و مقابل افعالش دیگر در فضیلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله والحمد لله تملأ الميزان الطهور وزي قرفته نصف إيمانه والحمد لله ميزان يعني ترازورة بور ميكون الرزق يا مات الحمد لله ترازورة بور ميكون تملأ شق تعزيم كلامي يا الحمد والصلاة نماز نوري. النور نماز نوره نورك أزون ما أزويه بور الصلاة راح تمشي النورك منافقين زش محرمون والصدق البرهان صدقه برهان والدليل جاز عذاب جهنم رو بر تو یا میگهت یا حمامت میکنه بر جهنم و و ضیاء صبرم منوره من و قرآن حجت و القرآن فجته لکه و, و علیه كل الناس یخذ فبائع نفسه فمعتقها او مبطها انسانه با عمل خودت یا اینکه جهنمیش میکنه یا اینکه نجاتش میدی از پل صراط ردش میدی که به بهشت الله برسه تو خودت هستی خودت به فکر خودت باش نه اینکه کسی دیگه بیاد دستت بگیره حمد بعد از غذا میگیم الحمد. از رکوع می بالا میگیم الحمد. ربنا و الحمد. نماز آغاز میکنیم میگیم الحمد. زندگی روی حمد. زندگیمون روی حمد. روی ستایش الله بندگیاش. روی اقرار به بندگی و ذلتمون در مقابل و فقیر بودن و محتاج بودنمون به درگاه الهی. حالا هرچند که حمدی که رسول الله صلی الله علیه و گفتن حالا خیلی زیاده نمیتونیم بهش بپردازیم. ولی خب من از جمله احادیثی که برام خیلی زیبا بود چون هم مثلا ها میگن رکن در خطبه مثلا چرا رکن در خودبه؟ پس هر خطبه که شروع میکرد با الحمدلله شروع میکرد ان الحمدلله نحمد و نستعين چرا حمد؟ شانش گفتم نمیشه مثلا اینجا مثلا به کل اون جوانب حقی حقی این کلمه رو ادا کرد لا صحيح مسلم داني حديث عبد الله بن عماد مقياد بينما نحن نصلي مع رسول الله قال رجل الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة شخصين جنين قب الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثرة ونشتكي الشهادة دار إن جمهم مخابس والحمد لله, لله كثيرا كثير زياد شكر خدا فقال النبي من القائل كذا وكذا كيف تكين هارفزات فقال رجل من القوم إخفاري درو قوم الصحابة قف أنا قلتها يا رسول الله من گفتم یا رسول الله قال عجبت لها عجبت لها خیلی متعجب شدم چی گفتن شدم چی شگفتی هست الحمدلله کافی الله اکبر و کبیره والحمدلله کبیره شگف زده شدم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماشه شگف زدی شد و چی فتحت لها ابواب السما برای ان درهای آسمان باز شد این بنده این ذکر گفت درهای آسمان با این باز شد بر این بنده الله این ذکر از این بنده قبول کرد درش را برای این ذکر باز کرد اینه که من میگم فرق بین ذکر تا ذکر فرق بین اینکه سر زبان بگی و استه قلب بگی معناش بدونی و ندونی الله اکبر و کبیره در زندگیت الله از همه چیز بزرگتر بشماری خیلی حرفه من هر چقدر بگم در حمد و تسبیح و تکبیر کم گفتم وقتی که میگی الله اکبر پروردگار را تو از همه چیز بالاتر می هیچ کس از تو بزرگتر نیست غذا بر من حرام کلام بر من حرام الله اکبر هر جایی تکبیر بود بالا رفتن بود اصلا میگفت الله اکبر و هر جایی پای بیمد در سفر بود میگفت سبحان الله بیاد که تو وقتی که بالا می بیاد عزت و جبروت و عظمت الله می افتاد میگفت الله اکبر مبات این معنا را درک بکنیم الله اکبر و کبیره چقدر در زندگیت الله را بزرگ پسند داشتی اینجا این, این سوال برای تک تک ما در زندگیمون هست چقدر الله برابل بزرگ بود که این بزرگی سبب موجب حمد و ستایش الله برابل شد در زندگی الله اکبر و کبیره هیچ کس از الله بزرگتر نیست چقدر عذابت الله و جبروتش و قهرش سبب شد که ما دست از معصیت بکشیم بگیم این گناه را انجام نمیدیم پروردگار از عذابت عقوبتت میترسم عزمت الله را و چش خودش بیاره قهر و جبروتش را به جنوب چش بیاره بیاد بیاره اون لحظهی که الله آسمانها و زمین را در روز قیامت مورد خطاب قرار میده و هران کسی که در آسمان و زمین و میگوید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار همه مقهورا الله بر هممون چیره است هممون خار و زلیلیم به درگاه الهی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار الله خشمی برزیده که اون خشم را هیچ وقت نبرزیده بر چی خشم بر اینکه که بندگان قدرشو ندونستن حزمتشو رو و ما قدر الله حق قدره اون که الله لایق شانش بود بندگان رو ندونستن تو این که دوچار معصیت شدی اون لحظه ای که گوشت برادر مؤمنت و خوردی دلتو خالی کردی دلتو خونک می کردی یادت بود که اون دل جبروت والملکوت صدایت را بیش نود و بر تو خش برزد بر تو خشین است که تو داری غیبت برادر مؤمنت را میکنی آیا جبروت الله رو به داشتی اون لحظه یعنی که بنده باید بیاد داشته باشه معانی صفات را باید یاد بگیره بدون این کلمات یعنی چی الله اکبر و کبیر یعنی چی یک ذره تو دهنش نره لحظه از ذکر الله غافل نشه جوهایی که باید این اسکار گفته بشه خیلی زیاده گفتم یعنی من اون چیزی که برای ما مهمه اینکه در نمازمون در از کاری که گفته میشه بعد از نماز، از کار صبحگاه، شامگاه، تمامی جاهایی که گفته میشه الله را بیاد داشته باشیم. الله را بیاد داشته باشیم که سپاسگزار بشیم از سپاس همین نمازی که میخونیم. نمازمون از مفود نشه. در اون قرآنی که تلاوت میشه تدبر بکنیم. حق اون نماز ادا بکنیم. حق اون تسبیحی که میگیم سبحانه رب العلا و سبحانه رب العظیم ادا بکنیم. یا ایها الناس ذکروا نعمه الله علیكم. نعمتواي الله رب تشجدش هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون شرنا وسبا چرا شرنا وجردان إنس الله مقال غيرت إنس كالله فريد جار الله مدبر شؤون الشمس ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض مسخرة صخرة آب ديريا كوه حيوانات نبي بنيت نعمتها وما بكم من نعمة فمن الله هر نعمتی که دارید از آن الله و این تعود نعمت الله لا تحصوها نعمتهای خدا بی پایانه نمیتونید بشمارید همه این آیات بخواب کناره هم دیگه بذاریم از جلال و عظمت الله بگیم یا الجلال جلال والاکرام این جلال عظمت حیبت شکوه ذل جلال صاحب شکوه که باید شکر و سفاسش بگید در مقابل این شکوهی که میبینیم این عظمتی که میبینیم حالا مثلا من فقط مرور می کنم رو اون آیاتی که فقط متعلق به همین حالا شاید بگم این ستا زک با هم تسبیح و تحمید و تکبیر چون یعنی بحثایی که اومده خیلی زیاد و توصیه میکنم حتما کتاب فقه عدی و ازکار داشته باشید و حتما تعریف شیخ عبدالعزاق عباده از ساتید من توی مدینه بوده توصیه می حتما این کتاب رو بخونید و دقت بخونید این جلد یکمشه جلد اولشه درباره فضیلت تسبیح و تکبیر و تحمید ورده جلد دوم درباره شرح اذکار یک جلدش درباره ادعیه دعاهای پیامبران که در قرآن اومده است توصیه میکنم حتما داشته باشید دعای قرآنی یک جلدش فقط دعاهای شرح دعاهای قرآنی. تک تک اینها معنای خاص خودش داره فضیلت خاص خودش داره ما چون از فضیلتش غافلیم از معناش غافلیم بهش ارزش قائل نیستیم همینطوری سرزبانی این در مقابلش رد میشه الله در قران درباره شکر گفتن این گفتم تکبیرات و تسبیحات و تحمید خداون لازمه شکر و اشکر نعمه الله انکم ایاه و تعبدون شکر الله را جیت و اشکروا لی ولا تکفرون و ابتعوا عند الله الرزق و عبدوه و له الیه ترجعون میگوید لازمه لازمه یکتا پرستی نه خداشناسی ها خداشناس خداشناسان زیادن ولی خدا پرستان کمن یک تا پرستان کمر لازمه شکر یک تا پرستیه یک ذره اگر در یک تا تقصیر کردی خللی وارد شد بر اون تقد بر اون عبادتت بدان که در اون شکرت مشکل هست در اون منزلت شکر گذاران که باید داشته باشی در اون منزلت و مقام تو کوتاهی کردی برای رسیدن به اون مقام الله تو را آفریده که شکر گذار و سپاس گذار باشی اگر نماز، سر نماز حواست پرد شد در آیات قرآن تدبر نکردی بودن که بده شاکر نیستی نهی که شاکر مطلقا نیستی در شکر سپاست نسبت به الله داری کتاهی میکنی اون لحظه که حواست پرد ای شکر سخنش حواست که این شکر الله داری سخرش رو میشنوی بعد حواست میگه که خمر نخریدی نون نخریدی این شکر الله داره باید سخم میگه حرفش داره سر نماز میشنوی میگه الحمدلله رب نخریدم کمی آب کمه اوقات آب میشه فلان میشه چقدر ارزش خالی شدی اینجا به کلام الله بسخن الله کجاست اون مقام شکر کجاست سپاس گفتن و ستایش الله ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم الله عذابته النبي اگه شکر گزار باشید چه کسی را خدا عذاب میده عذاب را بر کی میفرسته اگر بلایی هست مصیبتی میاد بدونید که ما بنده عاصی به خاطر معصیت معصیت هایی هست که ما داریم انجام میدیم اگر مصلح بودیم الله قومی را که مصلحین درش باشن عذاب نمیده عذاب اگر اومده به خاطر که ما مسلح نیستیم نقص در دعوتمون هست مشکل در دعوتمون هست مشکل در کردارمون هست سبحان الله شما نگاه که خلق خدا چجوریه برشون مصیبت میاد به خاطر چی مصیبت اومده از کجا نشعت گرفته اون مصیبت به خاطر قضای حرام به خاطر عدم پاکیزگی شما در نظر میگید امت چین دستشوی میره تو دستشوی هاشون آب نیست با دستمال می خودشون پاک میکنن از آب اصلا استفاده نمیکنن سگ میخورن، گربه میخورن، فلان میخورن الله خبائص و ناپاکی ها بر ما حرام کرده برای یک چی؟ چرا؟ چرا بر ما حرام کرده؟ چرا در شریعت ما حرامه؟ بخاطره که زرر داره الله خیرخواه توست الله بر تو مهربانه دلسوز توست بنده. ولی بنده ناشکر و سپاس. قدر نعمت ها رو نمیدونه قدر دین خدا را نمیدونه اونجا هست که باید عقوبت بشه و این عقوبت هایی که ما میبینیم دین رو نرسوندیم دیگه ماها مسلمان ها دچار میشیم چون ما دعوت ندادیم اگر ما دعوت می دادیم اونها دست میکشیدن وزیفه من هست اگر ما دعوت میدادیم این مصیبت ها به ما نمی رسید به ما میرسه چون ما کوتاهی کردیم ما یفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أها ولا الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بأعلم بالشاكري وإثأذنا ربكم لان لأ شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد شكره أجر شكر وسباس كاردي بيشترى الله بهم به، فليجعل ناسباس شديد كفران بنعمته الله يرزيد این عذابي لشکری عذاب الله دربناکه گفتم شأن و منزلت شکر خیلی ولاس شکری که تمامی این سذکری که من گفتم از حمد و تسبیح و تکبیر را دربار میگه لازمشه و سنجده شاکرین چقدر در قرآن تکرار شده، ثم لعاتیان هم من بین ایديهم و من خلفهم و وعن ايمانهم و وعن ولا تجد اكثرهم شاكرين میاد شیطون از جلوبت عقبت چرق و غربت میاد تا اینکه تو شک گذار نشی بدان اگر در شک گذاری کتاهی داری بدان که شیطان بر تو کیری هست بر تو شیطان مسلط شده لازمشه اگر روی وردی بر قرآن و بر ازگار شیطان از تو فاصله میگیره بله این جزاز جنس عمله و قلیل من عبادی شکور اندکن اون بندگانی که شوق جزاره، اون بندگانی که قدر خدا را می دونند، اون بندگانی که عظمت خدا را درک می کنند. ولكن اکثر الناسی نه یشکرون بیشتر مردم دونم شوق جزارو سفاح جزار نیستن چقدر از اون کسانی هستن که شب به تهجد می ایستن، شب سوره اسرائیل و زمر و تبارک و علیف الله می سجده می خونن این سوراهای که رسول استام هر شب می خونن. غیر از این رسول استام اسم ها مهار دیگه می شب ها. چقدر خوندی چقدر مواظبت بر این سنت ها داشتی چقدر اذکار صبحگاه و شامگاه خوندی شکر مقام شکر این مقام مقام شکر یعنی لازمه شکر و سپاست و الله اینه که پایبند باشه به این اذکار من این حمدو دارم, حمد دارم این تحمید و تسبیح و رو دارم توسعش میدم بحثش باز میکنم به خاطر اینه مقام مقام شکر ذريه من حملنا معنوح نوح انه کان عبدا شکورا میکنه به خاطر شکر این مقام شکر با بندگی ایجاد میشه با بندگی تام نه با بندگی ناقص خب به همین قد اینجا اکتفا میکنیم میریم به بحث خود اسکارمون قبل از اینکه برن فقط این قسمت از کلام محمد امین شقیدی را میخونم وقتی که میاد الله جل و شانه میگه و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله از یک تایی خودش یاد میکنه که فرزندی نداشته و ندارد و ملک آن الله بعد آخرش میگه و کبره و تکبیرا شیخ محمد امین شینقتی رحمه الله تشریف میگه در تفسیرش اضوال بیان در تفسیره و کبره و تکبیرا ای عظمه تعظیما شدیدا الله را بسیار و بزرگ تعظیم کن و کبره و تکبیرا بسیار و بزرگ بپندار پندار پروردگارت را ای عظمه تعظیما شدیدا یعنی الله را بسیار بزرگ بفهمدار، بسیار بزرگ بفهمدار. یعنی چی الله را بزرگ می‌ده و کبره تکبیره. یعنی از تو لغزشی سر نزنه، یک گناهی از سر نزنه. اگر سر زد که الله را بزرگ نپنداشتی برای خودت جلو خود الله را بزرگ ندونستی. و یظهر تعظیم الله فی شدت المحافظه على امتثال امره. اون چیزی که دلیل میده بر این که تو الله را بزرگ فهمدشتی چیه؟ شدت محافظتت بر عبادت و طاعت و اجتناب نهيه و الدوري و پرهيز از حرام از اون چيزي كالله نهي کرده والمسارعة الى كل ما يرضي والشتابت بسوية هر چيزي كموجب الرزيات الهيست اگر در خودت ديني كميشي طوي بسوية خير اگر در خودت ميبيني كدس ميكشي اسمعي الحرام اگر در خودت استقامت بر طاعت و عبادت ميبيني بدون كالله رفضور پر اندوشتي بدين در غير ان تو در شناختت نسبت به الله کتاهی داری و الله را چنانچه که باید و شایستی مقامشه که او را بپنداری نپنداشتی و باید توبه بکنی و رجوع به الله بکنی صلی اللہ محمد و حالی محمد